خب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوديعة <تصفيق> كتاب وديعه والوديعة امانته المستحب قبولها قبوله وديعه مفرماد امانته السكه مستحب هست بزيلي شعه اغام من نجام اين موبايل منو نازه خودت نجح دار ها؟ یه چیزی رو این پولار رو این فلان چیز نزد خودت نگه دار خب میگه این امانت هست مستحب بپذیرشی البته در فقه منهجی توجوی قشنگی آورده بود میگه این چند حالت داری در یه حالت واجب میشه بر شخص شخص زمانی که اطمینان داشته باشه من خیانتی در این امانت نمیکنم و کسی دیگر هم نیست که این امانت رو تحویل بگیره اگر تحویلش نمیگیره از بین میره ازای امال میشه دیگه اینجا میگه واجب میشه اگر شخص اطمینان داشت که خیانت نمی کنه ولی افراد دیگه ای بودند که این امانت رو تحویل میگرفن اینجا مستحب بک چکارش میکنه گاهی موقع حرام میشه زمانی که یقین داره آقا من اینو چکار میکنه تباهش میکنه مکروه میشه زمانی که طرف میگه احتمال در من آینده اینو چه کنم خیانتی رخ بده و در بعضی حالات مباه خب پس میگه ودیعه امانت هست مستحب قبول کردنش لمن قام بالامانت فیها مستحب برای اون کسی که میتونه امانت داری کنه درش و یک راهو لمن عجز آه خود ایشون هم آورده و مکروهه برای کسی که آجزه از امانت داری خب اگر یقین داره که نمیتونه که حرامه با هم توضیح مفصلش ولش کن و علمستودعی حفاظها بر مستودع هست که این امانت و این ودیعه رو حالا بهتر بگیم ودیعه چون امانت عامتر امانت چیه میگه و بر مستودع لازم حفظ آن و المودع معنتها و بر مودع است خرجش وليس للمستودع ان یسافر بها ان و مستودع حق نداره که با اون ودیه مسافرت بکنه اگر رفت به سفر ويردها على مالكها ان حضر و باز میگرداند مودع اون ودیه رو بر مالکش بر صاحبش اگر صاحب اونجا حاضر بود در منهجی میاره او وکیلها یا به وکیلش برش میگردونه اما فان كانا غائبين وجب عليه ان يدفعها الى الحاكم ان كان يؤتمن عليه الا دفعها دفعها الى امين يحفظها ان متني میگه برش میگردونه بر مالکش اگر حاضر بود خب این مال اقناع اون جمله بعدی یا برش میگردونه به وکیلش اگر هر دوتا تا غائب یعنی هم مالک و هم وکیل واجبه که به حاکمش بده اگر می که حاکم امانت داره وگرنه نه دفعش میکنه می به یک شخص امینی که اونو تکار بکنه نگهش بده این من منهجی بود علی الحاکم انغاب ولی مختصر آورده این کتاب میگه برش می گردونه به مالک اگر حاضر بود البته میشه بحث مختصر نیست که موقع نظریه علماء با هم چیه؟ فرق, فرق میکنه میگه برش میگه اقناه اینجوری میگه ماوردی میگه برش میگردونه بر مالکش اگر حاضر بود و بر حاکم اگر مالک غایب بود فان این فی منزله البته عرف ها هم فرق میکنه مثلا پول امروزه دیگه بانک ها چه شدند؟ خرسن دیگه سفر و هزار معنایی نداره ولی خب فقه فقه فیخ در این این که برای بعضی مناطق بروز رسانی بشه دنیا به این گستردگی همون قدمت قدیمش هم کارایی دارد یکی از خوبی هایی که اسلام کهنه نمیشه همین واسعتشه خب وان خلفها في منزله او اودعها عند غيره ضامنا ميگه اگر گذاشت اون رو در منزلش و رفت سفر يا تحويلش داد به نزد دي شخص ديگر ضامن است ايشون اينجوري ميگه ايشون چي ميگه ومتا اراد رد الوديعتي كان له هر وقت خاص وديعه رو برگرداند مودع كان له اين اجازه رو دارد و دیئه از اقود جائزه از لازم نیست هرگاه خواست که برش بگردونه این حق داره و لازم المالک استرجاعها و لازم هست بر مالک اونو باز گردونه قبولش بکنه فا ایلم یسترجاعها منه مع المکنتی سقط عنه حفظها اگر امانتش رو باز نگردوند یعنی مالک نوغيك اون طلاب كراغبية مع امانته تروه اون استرجاعش نكرد البته همراهبا تضانائي سقط عنه حفظها ساقط مشه ازمودع حفظ اون وديئه ومطع طلابها المالك فأخرها برعكس هر وقت كي طلاب كرد وديئر و مالكش صاحبش فأخرها مودعو مدو تأخير کرد زمينها زامن مشه إلا من عذر ما قريم كذره عذري باشه مثلا يكي مثالي رو صاحب منهجي عذر شيني كأن طلبها في وقت لا يتمكنوا فيه من الرد يكي يكيز عذره ايني مثلا طلب بكونه ان وديعرو در وقتي كه ان مودع كي ان مستودع مستودع. مودع اونو میگن که اماناتو تحویل داده مستودع اونو رو میگن که اماناتو تحویل گرفته فکر کنم یکی دو جا من شاید اشتباهی گفته باشم تا اینجا کار خب میگه هر وقت طلب کرد مودع یا مالک و دی ایش رو فا تاخیر تأخیر کرد مستودع زمین ها هست الا من اذر مگر مزری باشه ماننده این که در اون لحظه نتونه برای تحویلش بده گرفتار باشه مشغول باشه و اذا لازم ضمان الودیعتی بالتعدي، لم يسقط عنه الضمان و بالکف عن التعدی معنای روان جمره میگه زمانی که لازم شده زمانت و دیعه با تعدی کردن با کتایی کردن با تجاوز کردن ساقط نمیشه از شخص مستودع زمانت با دست نگه داشتن از تعدی خب این به چه شکله؟ اینو خیلی قشنگ صاحب منهجی توضیح داده میگه اونجا آورده استعمال و و انتفاع بها اومد و این شخص, شخص مصطودع ودیعه رو استفاده کرد چون در ودیعه حق استفاده نداره حسا آریه نیست دیگه اومد ودیعه رو موقعی من میگم این ودیعه هست نزد شما. این گوشی شوان نمیتونین روشن کنی کار بگیری خب این ماشین آقا ودیعه هست دست شنا شما نمیتونین روشان کنی بری استفاده بکنی میگه به هر وجهی از وجوه هواد استفاده استفادش کرد آه؟ زامن میشه زمانی که اون چیز تلف شد ولو اگرچه که بعد از ترک استعمال هم اون تلف بشه زیرا تعدی کرده با استفاده کردن ملک غیر بدون اجازش و با این تعدی کردن اون حکم اصلی ودیعه خود به خود برداشته میشه چون ودیعه امانته اگر بدون تعدی تلف بشه زامن نیست ولی اینجا اومده تعدی کرده استعمالش کرده اون ودیعه بودن دیگه از دستش به در شده ولو اینکه بعد از اون تعدی دست بکشه دیگه خلاص بعد از اون تلف شد زامنه دیگه این جمله رو خیلی قشنگ توضیح داده صاحب منحجی متوجه شدی؟ و اذا دعا ردها او تلفها قبل قولوه مع یمینه این میگه اگر خب ادامه حرف منهجی رو خونیم میگه اون حکم ودیع برداشت شد با استفاده کردش و اون بر نمیگرده مگر این که دوباره بیاد اینو عنوان ودیع تحویلش بده ماله که تحویلش نداده دیگه طرف استفادهش کرده رو کرده الان ولو این که دست کشیده بعدش تباه شد دیگه زامنه و ایز ادعا رده او تلفها و زمان که ادعا کرد رد اون امانه و دیعه رو بازگ بازگردندانش رو یا ادعا کرد که تلف شده قبل قولهو معایمینه پذیرفته میشه سخن مستودع ولی سوغن برش میخواد این میاد این اکذبه اگر او رو دروغ گو یافت یعنی yani اون مستده رو این شد از بحث ودیه.